بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله علیه سبحانه محمد و آله فیدین و طاقه رب العسومین و الغمت و در حمد و آله رب اللهم افترین و جزیر مشتورین و الحمد يا رحمت و رحمت و رحمت و رحمین اشتود مسئله یه این تقسیم بندی که محرمات در بابون مکاسب رو به پنگ دسته اساسی تقسیم کردن و باز بعضی از اونها رو همه اونها اغلب اونها افروی تقسیم کردن این ادارش از مرحوم شیخ محقق هلیس در شرایه و مرحوم شیخ انصاری و مثل صاحب جواهر رو بعدان شیخ انصاری این دیگه خیلی واضح که کار شیخ بالاترش صاحب جواره خیلی این رو رومشن و واضح دستبندی کرده مرحوم شیخ انساری توی مقاس محرمه پنج نوکر وفاقاً به شرمی نور چهاران ما رو من و به هرمه مثل عمل فی نفسه یک عملی که فی نفسه حرام باشه تکسرمونم حرام باشه یک ظابطه یک این مناسبه از مرحوم شیخ متعرض اهلی از محرمات شد و تا منهجی در کتاب مرحوم صاحب شرایط شایخ محدودی از اعمال محرم رو بود شیخ ایبو دست بندی کرده وستاد دست بندی رو شما رو گذاری کرده وستاد مسانب یک دو سه وقت و این البته هم بحث کورویش اشاره شد و بحث صورویش یه نقداری کلمات شیخ یا حتی افرادی که بعدش که کامدن خالی از مشکل نیست یعنی مثلا پس اون کذر رو جزوی این بحث کنم و اینکه غالبا کمتر میشه پول بگیره کذر بگوندن حالا رشوه چرا؟ رشوه رو چون جمعه از این محرمات این که جزو کس قرار بگیره خیلی روشن نیست و بعدم عدد محرمات بیش از این مقداره بسیدن مقداری که ما محرمات داریم علاوه از این بیش از این مقداری که مرحوم شیخ را دیگران که وعده و بعد از عناوین رو هم ما اضافه کردیم که شماره اضافه رو اضافه کردن هر قول لهی را هم یکم عنوان تقریر خداوند به این حری رسالت اضافه کردیم به عناوین ایشان در در نوع چهارم ایشان خیلی از مصادر گفتم چون نوع پنجم هم که بعد میاد این من بحث نوع پنجم نیستا که در آخر بحث چون یک مناسبتی متعرضی این میشن که احض و بر فضاوت هم جاییز نیست اون فضاوت از نوع پنجم هم نه از نوع چار نوع چارو مایه رو متکسر به لنه و حرامو نوع پنجم مایه رو متکسر به لنه واجب کن که <تصفيق> احض و عزت برواجبات اسمه شده اون نوع پنجم که اصولاً احض و بر واجبات حرامه که انشاءالا توضیح در همون نوع پنجم هم ازمی در از ایشون به یک مناسبتی مرحوم شیف در این که قاضی اگر رشد بگیره حرام اگر قجرت بگیره حرام هست یا نه این تو نوع تنجام خواهدانه جاش اینجا دونسته مسئله هشتون می رو که ایشان متعرض شدن در اخصان اونایی که به اصلاح حرام هستی که رشد البته یه مسئله مثل ربا روی کن مفرز نشده نمیدون چرا؟ ربا با این جمع کداش حرام هست شد تو معامله اصاف کرده میدونم به علا محسوسا معاملات بانکی که خیلی داشت توش ربا هست خب فرد میدون اینجا توی این بانک کارمند میشه به خاطر اینکه یک معامله با... معاملات روبری رو انجام میدونم با کنم کس باش حرام. آن فرم میکنم بخواد انجام بده معاملات روبری رو, رو هم. در حال ربا که با قبل از رشت زکت بشه کشون متعرض نشدن و تصالح هم خود مرمون هم چون مقاسب و مرمون کامل ننوشتن رو کامل نوشتن بعد از هم قبض و امیدال و نقض و نسیه بعد هم که کل کامل نیست از ما هم قالو هم به اکرام میشه هم که شیخ گفتم متعرض شده خب مبارس سرک و سلم هم خیلی به صدای حیوان و برای ثلث و اینها رو دیگه مرومیشه قدساله نشه نه اونشان اون شما فنا کرده غالبا هم این اونی که مکاسب نوشتن از مثلا همون استاد مثال که آیه هم, هم. حالا به همین مقداری که شیخ فرمودن احتفا کردن که خب قطعاً خیلی ناگوشین شده کل این کار مکاسب به رشوه رشوه رشوه جذب شده به مثلث و به شکل چهش حرام رشجام مقاصد خب ما در بحثی که ثابت داشتیم چون دو مو همتران فاصله شد با این که رسداریم بحث و منحج بحث رو در اون وقت این ترتیب خوندیم که روایت رو خوندیم و بنابرای که بعد از روایات یه ارزش مالی از کلمات بشه و بعد هم بدیم توی یه مسئله تحریر بخش روایات و البته موزم روایت رو خوندیم مقداری از روایات مونده در نه همین بحثی که کردن م و کاربرز بشین مناسبم بود اینا مستقلا بحث بشه دیگه حالا یاد اون بحثی که او چه گفتید چرا نگفتید فیدبک <تصفح> ده نمونید که ناراحت بشید مثلا حدايه عمال سهول و صح... هول... اینو ظاهرا چون شیخ داره نارو میکنه دیگه اسامیشون جون ترس میشن یکی هم رشوه در کارهای اداری که کار انسان گیر میکنه انسان میخواد به حقش برسه نه در باب قضاوت این هم روایاتی که نخوندیم این نخوندیم. چون شیخ در روایاتی شون این نیدهیم در بحث قفی متعرضی این قسمت میشین اون ده روایات مطلقه ده خوندیم از که این روایاتی که ما در بابره شد داریم ابلعن الله راش یا مرتشی و رائش این تعبیه رائش آمده تعبیه دیگه ما آمده و این روایات در مساقه اهل آمه آمده سرشم برمید پیشون از اجرای اینه که اصلا در مسادر ما نیمانده هر راشی همون در مسادر ما وارد نشده بله روایت بسیار معروفی در مسادر ما وارد شده در واقع تفسیر سخت یکی از اخسان سخت رشان یا رشافل حکمه این داریم در اینجا ما باز با احل سنت باکت بین احل سنت روایت داره. در روایت سخت داره. آلوان در روایت سخت ستا از توش این نیست این هم خوندون سابرن توضیحاتی خودم دنیان روایت احرس حنت تو سهت نیست تو روایت ما هم از وقتی همز کردم سابرن روایت ما یه نکته مشکل داره که تو دارد ممکن است بگیم شان مثلا چون شا مصبفی من و قداریم تا آراضی ندارم لیکن خواهی ازشان نیست تو ادهی از روایت ما عرشا فرحب وجود سهت تو ادهی از روایت ما عرشا فرحب موال کف رو به الله لرگو و این که رشا حکم کفرون به لاحر عظیم من توضیحات را عد کردم این سرشین است که از همون زمان صحابه این بوده بیادم یاد ظاهره اگه فرامش نکرده کلمات صحابه رو مثل همین تفسیر تبریم در اینجا در ضیل این آیی مباره که در باقی طبیوبه ها ایدم حکام متعرض شدن که رشا کفره و این توضیحات بشون من سر مطلب رو شون در روایات ما صرفش نمویدیم این آیه‌ای که لا ترکل و انوال کن بین باطل و تودو با حال حکام این تودو با حال حکام تفصیل بهتشوه شده همدتر از کردین حکام گاه این به معنای مطلق عمره داریم به خصوص قاضیه اینجا ظاهرت احتمالا مراد مطلق عمره ها شد که تو برحث فرقی می کنیم از کنیم بعد بعد از این آیه به دو تا آیه این سه آیه معروف قرار داره گرسه. من لم خوب و من لم اما این سه آیه آمده و تقریبا نزدیک به آیه سوره های الکوکا هر این رو واضی می امن اشاره می‌کنه هر رشا فرخوف از تبلوغ های فرخوف در نمیارید تبلوغ از رشای فرخوف رو از آیه مبارکه من لمیحکن به ما اندلالله الله با که همون کافرون از اون آیه در نمیارید این دوتا آیه، دوتا آیه, دو آیه پسند این توضیحاتی این که بود در روایات ما قرار دادن رشه جز سه، جز مسلماته چون من توضیحاتشه ارز کردم، روایات ما در شمالش صبح هم مختلف 4 تا 5 تا و متونش هم اختیاری به بحث داره که یه مقدار بحث متن و ان شاء الله در خلال بحث انجام جو. به هر حال ما معذن روات رو خوندیم ما در باب رجایت الحکم روایات معتبر داریم که سخط یا کفر بالله العظیم فکر کنم خب این مشکل هست به نظر من بودی نحوی تجاوز حل بشه این تجاوز حساب میشه شاید امام مثلا می کنند محبت که هم چون اون آیه صحبت از سر زاهرش به احل یهود مخوره کارهایی بوده که یهودی انجام می شاید مراد امام بوده چون رشن ها این انجام می مالی ما معروف بودند در این جهاز ما شاید نظر ما علیه که سلام این باشه که به یک معنای جز اعمال یهودی ها و جز اصطه و به یک معنای از یهودیگری باراتر کفرم به الله را نمید شاید به الله و حسب ظاهر یک برداری مشکلی بله این که اینطور معنا بکنیم یه دلویش هم صحصوزم باشیم اینم جال شد اصلا که اون وقت در مواحث اجمالی چون به این نهرهی ای که ما الان داریم در میان مسادر اولیه از خواب نمیدیم یکی از نقاط مبهمه کار ماست یه البته برای ما مبهمه. شاید به خاطر وضوح مطلقش در روایات اهل در مجموعه روایات ما خیلی تفسیر دقیق و روشن از لغز رشوه داده نشده شاید همین واژه رشوه فقه اما این که آیا رشوه عامه حتی پولی که انسان به ادارات میده و اینکه کارش شامل بشه نمیشه خیلی توضیح واضحه ای اما بعد ها هم در کتب لغت و هم در کتب اصافی ما مقام اعلی سنه آمده در ما هم برای بعضی از روایات ما هم در بعضی از خروج وارد شده اینا اجمال مکل تصریحش در استان میکنه این اینو خوب دقت بفرمایید حالا تو بحثی لو همین ترسید این شبهه هر نه ورشت حرامون بعد فرنده حالا تحریم ها اجماع المسلمین یک کی داره کی اصل ها در کی گردو لاعلل ادله تنعره اکثر اجماع مسلمین ده اجماعی است که و اینکه آیا در این مطلب در این مطلب منزل. جای شکلی ایست که اجماع قائمه لکه خب مشکل احساسی همون که کشون در روایات آما در روایات همون سنت آما در اجماع وجود روایاته لذا روایات معلوم نیست اجماع برای ما اینجا دلیل باشه من کراه ارز کردم اجماع باید برای خسارسی باشه که جنبه دلیلی بگر اما اگر اجماع خودش محکوم یعنی خود ایش ما مستنده به شیده دیگری اونجا بر ما عرضش نده و یدالله علیه کتاب کتاب هم برای دلارد می کنه و سنت. عقل هم دلارد می ترکر بکنم چه مرموشیست هم رو در اینجا در نگوید این ما اگر در تیامه هر نوع نظامی رو بخواهی بشید حتی نظام غیر فضاورد نظام اداری هر نوع فسادی که در این نظام ایجاد بشه اون محکومه دیگه حکم عقل عملی در بابشون عقل عملی خود این تحساس اخلاق است و سیاست مدن است و تدویر منزل به هر حال در سیاست مدن قطعاً چین حکمی محکومه یعنی مزمومه اگر قالب استرگاهد عقل بشین چین حکمی اون جزو محکومه دید. یعنی نظام ایباره الان خب می رویدید دنیا مبارزه با مالی. مثل مبارزه با مقاصد اجتماعی، مقاصد اداری. خود مقاصد مالی همیشه مشکل است دیگه. یه از مقاصد مالی این یعنی چی؟ برای احوالکاران هست که چرا اداری نه مالیه؟ نه من گذشته اداری، نظام نظامه. یه نظام پیچیده‌ای باشه واضح نباشه، ابهام داشته باشه، نقاط کور داشته باشه. بتونه افراد از نقاط کور استفاده بکنه. که اسلام خامش بشه. بسید استفاده بکنم و کارهای خلاف انجام نه اون نظام اداری باید چپاه باشه روشن باشه لیه آخر اون بحث اداریه یه مقاصد اجتماعی داری که باز حساب شد اقلاق و... را بود وضع اختصالی یه مقاصد مالی داری اصلا مقاصد مالی بود جزای که مقاصد که در دنیا من در یه کشه ایده نشود استانداری 90 ازار دولارم ها دارم خیلی نمیشه پس کنی تا چه اندازه مثلا مثلا نشخواری کرد کی دید تا این حد مبارزه با مفاصد اقتصادی و مفاصد مالی رو جدی میدونه پس انسان در باب خوابت که اون چیزی که دیدم دیگه توی دیگه روات ما اون شبیخویی نه نشه بدون شد چون قضاوت مثلا تشکیل شده برای ایجاد اداره در رفع ظلم خودش موهینه ظلم میشه و دیگه تماما اون دیگه به درجه اخلاقی از تصادف و فیلی مستفیده بالله و این که استغای مستفید خود میدونی خبری که از واحل بیشتر باشه از محتواطر کمتر مستفید دونی. این به نظر من خیلی تقبیرشیف دقیقی نیست چون من روایت سخت رو خوندم و عرض کردم بازم عرض میکنم در وسائل توی افوام مارد تصالب اده از مواز سخت رو عورده به متفردان اما در جامل احادی این چاپی که شده سیدو سیدو با. اصلا یه بابی بار کلب با و ماورد بی تفسیر صورت وسائل نداره این تو جانه حاضی صورت روایت صورت جزاگانه رو بخوره تو این روایت صبح تو بعضشن رو عشاق الهب رو تو بعضیش رو کفرم همش نیست اینکیشون نشافه مستفید بهتر نه تا همش نیست از که روایت تر اصلاقه نباته همه همیر المؤمنین یا مابال احتاج و هنه هرار احتجاجاً اللهعن و يومان و عن حوایج خوب این رواد معروفی هم هستนะครับ ماصدر اهل سنت هم داره و البته این احتجاج در اینجا مراد این نیست که حتما در یک حالتی باشه دیدم بعضی از ثانیون نوشتن روانه شیعه سنی اون فکری این در یک حالتی باشه که مردم بیان با رو برو بشن این مراد از احتجاج از ازو مراد این که گرفتار این حل بکنه حتما لازم نیست بیا بیانه این مرزوم بشی نمید استرابیه رو روبرو حل نکنه چه حل اما روبرو نمیشه اما یک نظام اداری متخند یک نظام اداری صحیح قرار داده هر انسان این میتونه به حقش برده نه رسیدن به هم واضح باشه در افتیارت نوستی که ما همونیون تو آفتا رسیدنتون به خاطر صدور خوشی باشه. این بتونه راحت داشت استفاده رو، به اینها انجام اینه یک این نظام اداری قرار بوده تمه این نظام اداری کارها همه تنظیم شده. چه می گفتن گفت یه از این کشورهای اروپا شما رو بود. کسی از اون صبحا سی نظام اداری زدن که اون کارو تم شما کار بانکی داریم، به بانک، کار هر کار این این ممکنه حضور فیزیکی تو مردم درسته بار شما داشته باشه اما این مهم نیست آمدن در میان مردم مهم نیست اون مهمش احتجبن هوا جنناز مورد از احتجاب یعنی این یک وزیبه نیست که هرکتی که مخواد حاکم باشته پشتی هر مردم یکیدیم ببینیم کشون دست راهی رو قرار بده راه های قانونی رو قرار بده هر کسی بتونه به حقش درسته راه مشخص مشخصه کارها مشخصه برنامه ها مشخصه توی اداره بکنیتی ظلم میشه مشخصه نیرون که بزرشت ها رسیدگی میکنه چی میگنم دیوان اداره؟, اداره یه دیوانی را تو خود اداره ممکن اصلا یه واقعی قرار بده برای نظارت در رسیدگی به کارها کارها مشخصه هر کسی هرش موقع مشخصه وام میخواد مشخصه یه جاده موقع مشخصه چرا چی قرن مشکلات اجتماعی دارن مشکلات مالی دارن راههای مشخصی دارن دولت هم برنامش مشخصه یعنی حاکما رسوند دولت این حاکم هم برنامه را مشخص کنه مراد اینه احتج بالج ان این معنا رو من چون دیدم بر از اهل سنت در ذیل حدیث باشه معنی خوبیه مثلا داره احتج یعنی خیانه خوب این از اون روادیست که در تجسیب و نعمال که احتجاب از هوای جناس باطنش اونه و ان اخره حدییتن کار قلول ها قلول خودش به معنی خیانت هست غله معنی خیانت بعد ها در لغت بیشتر مثل دابه که معنی مهمش لیکن اطلاف شده بر داب و بوستان مثلا بر اولاق و مثلا اصولید و چیزا لفظ قلول یعنی خیانتی با که انصراف عرفیش الان در روایه بیشتر به خیانت در غنیمه دیر وقت چند یه چیزی کسی برد از غنانی راشتی میتوستید رضا عقلش مطلق خیانتی بین اخل حدیعتن کام قلول ها وین اخل رشوتن برد صحبه مشکه ظاهرم و بحث تندیش رو متعرض شدیم که سر ضعیفه ما الان تو ذهنم نیست که سی از آن رسائل هم این کامپیزر که داشته باشن این به اصطلاح غرایت رو ببینن سند. ما در اسفقه نباسه بابه پنج از ارباب ماید فساده حدیثی یه یادم نیستی فهم گفتم ضعیفه ما الان ذرف اصنادش من این نفسش تو ذهنم نیست راجب این افراد حدیثم کان اینو ان شاء الله در آخر به واسه حواله ها رو نخوندید ان شاء مرحوم بلا ثواب اعماله که ابیر بن عبدالله فاضل از یعقوب خیری از محمد تقر احمد از محمد تقو نصر از السنان ان ابیر الجالود ان فرده رو مرحوم شیخ صدوق در پذیر از کتاب کسی نه نکرده نه من هتلم ایشون کرده کردیم خودش این خودی نه تار در مساله یکم ضعف میاره. از کتابی صنایع ناظر الهکمه این روی فضیال ما از کردیم کتاب معلوم بوده و ما محمد نه اسم محمد نه کتاب ناظر الهکمه است معلوم شد رو به و صدیق ساین معلوم میشه که مثل معلوم کولینیا نرو کرد من از کتاب ناظر هم در اختیار شیخ کلی بوده و هم صدوه و هم اختیار شیخ طوسی. بسیار کتاب معروفیه و مشهوری بوده در گفت کتاب معروفیه توضیح ادسات اصلا فقط چیزی که است به لحاظ ارزش علمی جزء مصادر در 3 و 4 ما دو نباشه. باشه. علاوه بر ضعیف زیاد داره. این هم جزء همان روایت ضعیف شه و اصل اصلش هم از مصادر خط قلوب رو که از مرحوم محمد بن سنان اون ابن سنان مراد به اصطلاح محمد بن سانانه عبدالله ابن سان که ضعیف ارز کنم به این که این راجع به اون رواستم تو زهنم بود ببین در اواخر بحث رشوه و مالورد منعن حدای الامار غلولون چون مرمون شیخ انساری به عطا حدای الامار رو بزن من رو عطا حدای الامار یه جا بکرم چون سونیا زیاد دارم به عطا حدای و محل بحثشون ما چون پیش ما بسن خیلی فردی وارد نشده خب مثلا کپا کپا و سهوله همه خیلی روش بحث نکرده اما سنوی ها چون در نصال فریگان روش بحث نکرده. خیلی به حرف رو اصلا من خیلی مغیرم یه فرهنگ احسانت هم در اواره فرهنگ ما هست مثلا لعن الله ها راشی ما نداریم سنوی ها دارم لکه ارشاقه حق سختون ما داریم سنوی ها ندارم ا اون مشکل اهل الامر چیز مشکل اهل فقط نیست که توش چون جایی که خود پیغمبر خان یه هدیه بحث معروف اهل سنت اینجوری اجاز در مقام سری داره چون اهل سنت متحیرن طرف پیغمبر خان هدیه رو خودشون هدیه رو قبول ندارند اونجا تعارض اهل ما هم نداریم چون راحته چون رو اگر سوال این, این خیلی نکته ای مهمیه ها شما ممکن است بگیم همین که در کنی نیامده مناش که که از قبول نداشن احلی بیت بگیم بحث تاروز مثلا نیتون قبول نبود این روایت قابل قبول نبود که بگیم با فرد پیمه همین مستازه نمیستازه و از که از این مرموم و بروجهوی محترق بودن کرام از کنی اگر حدیثی بین احلی صانت مشبور باشه ای شما نی اگر حدیث به این مشهور بود و در روایات ما نهتی نه این من قبول این ویدیوانی میگه نه حدیث مشهور بود و نیامر اینها این من قبول نگردن رضا این به یه تعالوز داره در میان ما این نقطه فنه داره که ما هدایات امار قلولون قبول بکنیم یا قبول نکنیم این چون منون شیع خودش من وقتی باید اول روایتش رو بخونم بعضی داره این بودشت اونجا در در شده. بله، توی در. چرا من تا حد همه دیگه مشکل نداره. ایشالا عرض اونجا درست چون من الان فقط میخوام طرح مسئله یک یکنواختی داره. می‌خوام دیگه در ترکه کلمات مثلا پرسیم جامعه راست دیگر را کنید به همی کلمات شهر بکنید بعد دارید به اون تحقیق مثلا یه روایت هم به روایت که این دوباره سند صحیحه، صحیح خود ایشان نشه فسطحیح اماره این مروان خدشه ایساقا من کرده به هر حال قبلات مروانی و همه یه روایت مروان برسته و شاید یک مرنای صحیح تر بل. فقط چیدی که بله کل شیء انقلاب من از امام هر که از امام خیالش بشه کارو و در این وعده آمار این شایشون بعد خواهم دو، این نقص الان اینجا عرض بخونه، حالا چه بگم که ای که در این در سمید در سو تفصیل در باب اخذ حجات برخذابه وله اطلاق ما تقدم فیروات امارم مروان منجعل و عجور و قضافت حالا چون ایشون در اینجا که اوگردم هم از خود مروانی شیست متعرض این دو استعمال نشده من الان در خود مقن حدیث اول اموردین دو استعمال رو بگم روایت اینه و سخت و انواع اون کثیره منها ما اصیب من اعمال الولاق الغلمه و منها اجور القضاق قبا هم تو برزیز و اجور الفواجر و خمال خم و نبید مصفیر داخلی عبارت که خود اجر قاضی سخته منها من اعمال من منها ها این یا این ارواد اینجور معنی که اینکه فهمیدن فهمی جن که یا این منه ها جمله معترضه بگیری چون ارواد این دقیقی بکنم و صحبت و اون کثیره منه ها معوسی به من اعمال ولات غلنه در دسته های ظالمین و سفنگران جنایتکارها انسان از اعمال اونها بخواد کجور بگیره. وننها اجور و غضا احتمال داده اجور و غضا معترضه باشه بگه ما اصیبه من اعمال غضاست یکم اجره قاضی فکر هم کنامی اگه که اجور دارم بایدو فکر نمی وننها ما من اعمال غضاست بلنه نه یعنی چیزی در در دارم باشه حاکم باشه و باشه وننها قاضی, قاضی و من ها، یعنی ما دو به اعمال شیخ به تحبیل شما خیلال شیخ میگه و منها این مستقلنه من ها. و از انواع این کثیره من ها ماوسی ما و ها وجود چه اینجور کرده تو این ابارتی میدار دقیق کردیم به میره ما تقدم پیروات اعماره لمروان منجر من اجور رو گذار این از صحبه چه اینجور مالی. اعمال وراثی بود نیست؟ چیز هستی که او هر کی زادمش نه، خود بودنش نه میخواد دیگه اعمال ولاد شامل خارجی هم میشه. نه اینکه اجر قاضی دائما سهره، دو دوتا معنا میشه. واقعی نه. نه واقعی است اصلا شیخ اینجوری میگه شما پس خرید تو مثلا میگن پیش شما به ناحق میگید بیا من پول میگم وقت نه به نفعی گفتم فقط واقعی با. او احتجاج میگم یک ساعت در مقابل یک ساعت که طول میشه هر یک که در من پول نمی گیره این یعنی واقعی این پول گرفتن حرامه شیخ میگه من می این پول این پولی که شما می گیرین برای اینکه بین نفر تفاهم لیکن احتمال دیگه نه این پول حرام میشه پولی که قاضی جور میگه حرام میده ما قصیبی من اعمال ولات ظلمه ولات ظلمه فقط استاندار نیست ولات ظلمه قاضی شده هست اونجوز ولات چون در استدا وقتی میگن دولت دولت به مقابله مقابل قبولی مجری در قول مرمن و قضایی دولت کل نظامه الان امام محقق فخر از ولایت والی دولت ظالم مرادش خصوص اوامر مجریه نیست بلکه قضایای میشه این هست الان هم در روی همینطوره وقتی میگن دولت وقتی میگن نظام مراد مجموعه شامل مجریه و مقرنده و قضایای تمام تمام تشرییعی که به نظام برمیگره وقتی دولت مرادش دولت خصوص مجریه در مورد مقرنده و اینجا شاید مناده امام این باشه هر چی که در دولت ظلم باشه و من جمله پول دلگوز خریدیست اونم حرام ها. یعنی قضاقت اگر شما پول میگیریم فی نفسه حرام نیست اما اگر در دولت جور باشه حرامه این به نظر من خیلی تأییم اینطور داره اینطور داره و این رواد اینه کلوشه این قول داره امام و فاقه صحب و سفته انواع كثیره منها ما اوسی به من اعمال الغلات ظالمه و منها عجور القضا و عجور التواجل منها نذاره شیخ زاد یعنی عجور التواجل منهای عجور القضا و باص مطلق گیرسه هر طرف در نظر یعنی بلاخ انواعی که اون داره خودش خارجین چه منها ما به هر حال کمی خالی از ابهام نیست. اون اگر این شد که نتیجه فتاوی شد، من الان از متن حدیث چون شیخ اینجوری نگاریدن. در متن حدیث اختلاف می‌خونم چون در بحث فقهی شیخ که آمده که اصلا بحث معامله کرده. آیا آقا آی که چه پول بگیره برای قضاوت؟ بیا آقا من پول به نفع هیچ خودمون هم حاضر نیستم، که من حکم اداری رو برام می‌کنم که پول که این وارد بحث اولن اجاره به عنوان حرام باشه. این یه دو از به در واجبات حرام نشه من رویشه البته این مطلب که عجور القضاق هم منحسرن تو این رضایته الان من جامعه هادی سمود نگودم با خودم اگه حدودم روایات رو میخوندی البته منحسرن چی رضایت معطلبتی رضایت قطعه الاسلام تو اجوغازی هم داری با عجور و سواجر و سمال خرب این هم بحث روایت بعدم رضایت سماله رو که ما توضیح شد و روایت دیگری وجود که توزیع داده شده و رجلن جلنه احترام جمعی دو داریم و ضعیف خونی متعارف شد. احترام ناسوی افراد فصل هم عرشوه. من میخوام من هزینه شوالیه رو سریو. شیخان در اینجا یواشواش و لاه و هادیه و باهیم سوال و رشیه به بعد اینجا، از اینجا واضح شیخ بگیم هم واضح فقر حدیث بشن درست دارم هستنی این اصلا رشوی چی چون توی این روایت داره که مردم به او اون نیاز دارن این به فقر اون هم میگیره خیلی از مقام مردم بشن این شما بر ما منبر این روایت احلویتی بکنیم احسان بر. میگه تا پیل نگیرم نمیگرد حالا پولی اگه صرف وارد مشکل نیست که اگر یه پول دگرگونی کنی این مشکل نیست مشکل کجاست؟ روی این پول اصلاح ریشه شده. از اینجا از این نقطه مشخص شد چیشده آیا کاری ریشه چی اساسه؟ حالا یکی سید. پول میگه می می که عمر واقعی داری، حالا کمی میگه که تو دسترس نه سانیار نهش کن، پول که گیاه کاملا داری. طبعا رو ضعیف قابل چیزایی که افطانه سننی نیست، لکن آیا میشه از این روایت فهمید که رشوه در مفهوم دینیش یک معنای واسعی رو داره؟ ما ها خیام ممکن رشوه بدیم به قاضی نه ما عوض می‌کنیم. این چه ذهناره چه را نمی‌گه؟ معنای اون پول بدیم به قاضی یا به اداره کار ما راه میافته کار خودمون راه می. منو به از کردی اصلا پول بدیم به اداره، به با اداره باسون میگن ما پول نداریم، پول نمیذارن که باز بکنه، که کار ما باز کار به پول بدیم به شخص که پول به بکنه. قضاوت کنم؟ تقی هم میگه من تقی هم قضاوت حساب نمی کنم، میگن تو فرهنگی هم به इनाम صدق را میکنه، پس روشن شد، یواشاش از اینجا میخوان وارد بحث بشن. به انصاف قضیه، انصاف قضیه. تو روایات ما این است یه موردش آمده که من رد میشم از من میخام پول زور بگیرم یه رشته بهش بدم نمیگیره پول زور رو نمیگیره میگه اشکال هم. این این به اسمیش رشته نکرتن اشکال نکنه این نه جز مفاصد اقتصادی اشتباه نشه مثلا این معموره مالیاتی و مثلا فرض کن ده درسدش بیر شیطان هج میکن بیسواد بیس درصد میره سی درصد یعنی ظلمش میکنه این برای اینکه این ظلم این نکنه به هم 10 سال خالص خانیونه بشه یه 5 درصد مثلا بشمیده ولی اجازه راه مال شوخی ها من گوش دادو ماده تحت جاده یه پولی بیشه که کارو رد بخونه از ظلمی خودتون نجات پیدا تو روایت داره که این این اما در منهای مجموعه حالا این مشکلی دیگه چون فقه قدیم ما هم این من تکرار میکنم تو خیلی از نشاره. چون هم میخوام جب و اون ما رو باشه چون تو روایات ما تحدیل دقیقی نشده تو کلمات با آهان در زیادی از آن تحدیل دقیقی نشده این یک مشکل دیگه کار چون روایات فقیه ما تا سالها تابعه مطلق روایات بود اینن تبق روایات می میکرد چون تو روایات این تشریح نیامده تشریح نیامده بعد تو روایات ما از رشافل حکم آمده که از این خیله میشه فهمید که مثلا رشاد در غیرابوک میست لیکن چون توی گروازیم دفعای کفرد الله العزی مشکل داره باید رشدار حل نکنه ایشون دیگه شروع میکنه بله وضع همه با حاضر روال سوال رشد باید به فرحه لذای ایشون میگه گرفتن بازی این به اصطلاح رشد این تا بعد از این محوم و دیگه حالا ما شون برد بحث میشه من کلمات مرموشهش میکنم مرادم تنبیه به نکات بعد نکات رو جمع میکنم و ظاهر و حاول معنا و ظاهر و معنا ظاهر و تفسیر رو شیخ خاموس به جول ببینید گفته جول جول یعنی پولی کاملا میده ما اگر نیست بهش میان جول این یک و الیه نظرم محب غستانی طرفی و فت ارشاد هر وشور ما یعظور هر متحاکمان من شیع هستم خدمتون شیخون موقعات فدمیش رو من دارم رازارم دارم دو من نقصی فدمیشی بود که خودمها ننوشتن خودمهای از خواب ما این یواشتراشن در حقیقت این مطلب رفت تو فرح اهل سندن تحریبات شدن بعد آمل در فرح ما مثلا در قرن درمان محفظ سامی نوشته نوشته غشور ما یعظور هر متحاکمان تو ما تو ذهن ما رشته هم پولید که بیاد کنن اما ایشون میگه نه اگر پول بیدین که بیاد حکم کنن این هم رشته هم شیخ قبر صلی نه رو در فرهنگ فره شیعه تفسیر رو رسا میگه تفسیر چون تو روالا در عمد تو فره قدیم رو نه اماره در فره متختیر در حقیقت رو از مساله عهد سنتی رو فراگیر یک نکته میگم با داماد مرونی شیخ تفسیر نه یک نکته ای که چطور این تفسیر به کتاب لغت رسیده فکسر ابو القاموس به جمع مثلا نمیدونی حالا من فراگیرش میدم بعد توضیحاتشو بعد از انجام ایشون نوشته به المسوار مجمل بحث یعنی ابو القاموس که قاموس جوهر معروفه مجمل بحث خب کتاب مداخله شی نصبه هم که دا ضعیبه نیستن اول آن مرمون طریقی قل لما توست عمل از رشوه الا فی مایوتا از حقه آن تمشیخ باسته این پول دادن به قاضی رشوه نیستید حق رو به طرف خودتون گرفتن بشتن آنه طبعا مجموع وقتین یک کتاب لغمی مخانسته بستون تفسیر آیات و روایداتی کرد وحن مصباح مرا تریمه مصباح مونیره هی مایوتیر شخص لله او غيره ببینید ای وقتی کتاب باز داره، کتاب لغویه، کتاب اصفهانی، پرسش ما همین شیطوریه که یک ریشه خصوص حاكم او غيره ایشو غیری هم این چطور ای زده به لیح ده؟ او يحمله على که میخواد رشته ای برگردن کلی این رجوع که خاکرها اوز یحنه یعنی یحنه رو حاکمه الان ما یاریم برشتن تو پس بنابراین در نصباه مونیر این طور آمد ولن نهایه مرا نهایه ابنه اثیره که این هم کتاب لغویه چه حدیثه. یعنی که حدیثه این نها الوصل است و الال حاجه به مصانعه با ساخته وصل یعنی نوعی که انسان رو می رسانه. رضا ما لرمون یاده میاد ثابت اون رسیم بر این اسم رو چون رشتور گردار رشاد نانی ریسمانه اصلش بر این اسم مثلا رشتور بخواییم به فارسیه چیزی مشابر جلدهان برم مثلا اسمشون رسانه اونی که انسان رو به مطلوب خودش میرسانه رسانه چیزی اینی که انسان رو میرسانه این در حیر اینشون اشه یعنی چیز را بگرده ایشون حاکم و غیر حاکم چون وصله یه در حاج مایرز و نوهل قاضی هم برشو میزه پس معلوم شد قبل از جاهان خاصه این اصلا به کتب لغت هم کرده غیر از خیلی بعد نوشته از راشی از لبی مایورین و الباصل و مرتشی علاخل. چون اینجا یکی از این متونی که اهل سلطت دارد اینه لعن الله و راشی و مرتشی و راه ارشیت آب اینه همه یدید داده ها و یه هم قصد ما نظر، ما این رو دا ندیدیم. ایشون روشه عرائس، یه بحث لغویه که دارهشون باز راش آثامسه بایع باشه یعنی به اصطلاح عین باشه. و این روشه اصلش این هست که باهاش رو می‌کنیم، حواله میشه. حواله نیست، اوبینه اما یستذید لهادا یستفد این عبارات رو مرحوم شیخ حسن صله الله علیه ما همیشه اثر کردیم. یک کار مهم اولا اون نکات عبارت رو استقراض شدن در یک جمعجور و یک سیر تاریخی رو به هم برحب دادن بیگه تقریباً در شما روشن شد در برایات ما تفسیر دقیقی نیامده به همون مفهوم و عرشوش اتفا شده در عبارت برای ما نیامده یواشهاش در کدو به اهل سنت آمده در کدو لغوی اهل سنت از این کتب که مثلا قدم شما و هفته مشنون یواشهاش تو جامال مقاصد آماده گررنه دامانه تو کتابش شاشه ارشاد آماده یعنی یواشهاش تو کتب فقیه ما هم راه بدا کردن این سر تاریخی بوتر شد این سهر تاریخی فقط یک نقطه میمونه که آقای ها بیردش رو شد